15 عادت ضد تنبلی ایجاد حس فوریت بهانه که از میان میرود فعلا وقتش را ندارم طبق قانون پارکینسون مقدار زمان انجام هر کاری برابر است با مقدار زمانی که از پیش به آن کار اختصاص داده اید مثلا اگر مهلت پایانیتان برای تحویل یک پروژه سه هفته باشد احتمال آن بسیار است که در پایان روز بیستم پروژه تان را تمام کنید نتیجه آنکه ما اغلب کارهایمان را با تراشیدن این بهانه که فعلا وقتش را نداریم به تعویق میاندازیم، اما اگر بتوانیم مثلا با در نظر گرفتن یک مهلت نهایی برای پایان کار حس فوریت و استراری برای انجام هر فعالیت ایجاد کنیم آنها را سریتر انجام میدهیم. یکی از بهترین عادت‌هایی که به وسیله آن میتوانیم بر به تعویق انداختن کارهایمان کنیم این است که طوری زندگی کنیم که انگار مهلت پایان هر پروژه ایمان فرداست بدین ترتیب حتی اگر برای انجام پروژه یک هفته وقت داشته باشید این عادت را در خود پرورش دهید که آن را با چنان حس فوریت و استراری انجام دهید که گویی تنها یک روز دیگر برای انجامش زمان است. راه حل ایجاد حس فوریت در هر کار است دو راه برای انجام این کار وجود دارد راه اول برای خودتان ضرب عجل تعیین کنید گفتیم که هر پروژه معمولا به اندازه زمانی که از پیش بدان اختصاص می دهید زمان میبرد اگر اینطور است چرا خودتان را برای انجام سریعتر پروژه به چالش نمیکشید؟ مثلا اگر انجام کاری یک هفته زمان می برد، سعی کنید ظرف مدت پنج روز انجامش دهید. از شکستن رکورد خودتان در سریعتر به انجام رسانیدن کارها برای خودتان یک بازی بسازید. حتی اگر دیگران برای شما زربل عجل تعیین می کند، از این قانون پیروی کنید. مثلا اگر رئیستان از شما خواست که پروژه را تا اول اکتبر انجام دهید، شما خودتان این ضرب عجل را به 15 سپتامبر تبدیل کنید. این کار نه تنها راندمان کلی شما را بالاتر می برد، بلکه برای شما فرصت اضافی برای انجام کارهای مهم دیگر را هم فراهم می کند. راه دوم از تکنیک زمان استفاده کنید. انجام همزمان کارها عادت خطرناکی است. هر چند شما ممکن است فکر کنید با انجام دو کار در یک زمان موفقیت بیشتری به دست میآورید. اما آنچه به راستی انجام می دهید این است که، تنها نیمی از تلاشی که برای انجام هر یک از این کارها لازم است را به دانها اختصاص می دهید. اگر انجام همزمان کارها برای تان یک عادت شده است، باید بدانید که کیفیت بازده کارتان کم است. ساده ترین راه حل برای این عادت مسئله ساز این است که عادت زمانبندی را خودتان پرورش دهید. ایده اصلی تکنیک زمانبندی این است که شما باید روزتان را به زمانهایی مختص انجام تنها یک کار تقسیم کنید که در هر زمان تمرکزتان تنها بر روی آن کار باشد این بدان معناست که طی مدت زمانی که برای انجام کاری در نظر گرفته اید نباید به ایمیل یا صفحه فیسبوکتان سر بزنید و نه برای دوستانتان پیامک بفرستید و نه اینکه کارتان را نیمه رها کنید و به کار دیگری بپردازید در طول این مدت، تنها باید به کاری که به آن زمانی اختصاص داده اید متمرکز شوید ولا غیر. اجرای این عادت روش مورد علاقه من برای زمانبندی تکنیک پومو درست که در عواست دهه هشتاد میلادی توسط فرانچسکو سیریلو به جهانیان معرفی شد. سیریلو دریافت که شما می توانید واژه کارتان را بدین ترتیب به بهداکثر برسانید که در مدت زمان اندکی بر روی یک کار تمرکز کنید و بعد از زنگ تفریح های کوتاه مدت برای دوباره به دست آوردن انرژیتان استفاده کنید. به هر یک از این مدت زمانها و کار اختصاص داده شده به آنها یک پومودورو می گویند. انجام این تکنیک بدین شرح است. 1. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید را بنویسید. این فهرست را با فعالیت های میمتفه آغاز کنید. دو سایر کارها را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید. سه ساعتتان را طوری تنظیم کنید که مثلا در 25 دقیقه آینده زنگ بخورد. چهار تا زمانی که صدای زنگ را نشنیده اید بر روی نخستین فعالیتتان کار کنید. پنج این پومودورو را به عنوان یک فعالیت انجام شده ثبت کنید. شش یک زنگ تفریح پنج دقیقهی برای خودتان در نظر بگیرید. هفت این کار را تکرار کنید تا نخستین فعالیت تفه شما به پایان برسد. هشت این پروسه را تا انجام شدن میمتفه های شماره دو و سه ادامه دهید. نه. پس از انجام هر چهار پومودورو مدت زمان زنگ تفریحتان را به 15 تا سی دقیقه افزایش دهید. 10 ده. این روش را ادامه دهید تا تمام فعالیت های مهم روز شما کامل شوند. مدتی طول می کشد تا شما بتوانید خودتان را با روش پومودورو رو دهید اما بعد از اینکه آن را به قدر کافی تمرین کردید در خواهید یافت که چقدر راحت می بر روی هسته کارتان، آن هم به محض آغاز کارتان متمرکز شوید. به طور کلی، ایجاد حسی از فوریت و استرار برای انجام هر کاری که در پیش رو دارید بسیار مهم است. زمان شما منبع محدودی است و بنابراین باید عادت سرعت در انجام کارها را در خود پرورش دهید. با داشتن این عادت می توانید به سایر فعالیت های شخصی و تفریحات زندگیتان نیز برسید.